نوار با همکاری نشر جامی تقدیم میکند باید یک دلغدغ اساره هاین بول مصل یکم به بند که رسیدم هوا تاریک شده بود به خودم فشار آوردم تشریفات ورودم را انجام ندهم تشریفاتی که در پنج سال خانه به دوشی شکلی خودکار به خود گرفته بود پله های ایستگاه پایین پله های ایستگاه بالا کیف سفری زمین بلیت قطار از جیب پالتو بیرون برداشتن کیف از زمین تحویل بلیت رفتن به سمت روزنامه فروش خرید روزنامه اصر خروج از ایستگاه و گرفتن تاکسی پنج سال تمام تقریبا هر روز از جایی حرکت کردم و به جایی رسیدم صبحها پله های راه آهن را بالا و پایین و بعد از پایین و بالا رفتم تاکسی صدا زدم، در جیب شلوارم دنبال کرایه تاکسی گشتم روزنامه های عصر را از دکه ها خریدم و در گوشه در درونم از یک نواختی این روند حساب شده کیف کردم از وقتی ماری مرا ترک کرد تا با این مردک کاتولیک تسوپمر عروسی کند این جریان یک نواخت و تکراری بدون اینکه آرامش و عادت من خلالی در اجرای آن ایجاد کند شدیدتر هم شده است برای اندازه گیری فاصله میان ایسکا تا هتل و از هتل تا ایسکا مقیاسی وجود دارد تاکسی متر، دو مارک، سه مارک، چهار مارک و نیم دورتر از ایسکا راه آهن از وقتی ماری رفته گاهی سردرگم می شوم. ایستگاه راه آهن و هتل را با هم اشتباه می گیرم. پریشان در دفتر هتل دنبال بلیتم می میگردم یا از کارمندان راه آهن شماره اتاقم را میپرسم. چیزی که می آن را سرنوشت نامید، شغل و موقعیتم را به یادم می آورد. من یک دلغک هستم. به طور رسمی شغلم را هنرپیشه کمیک مینامند اجباری به پرداخت مالیات کلیسا ندارم. 27 سالم و اسم یکی از برنامه هایم حرکت و ورود قطار است که تماشاچی تا آخر حرکت را با ورود اشتباه می کند. این برنامه پانتومیم تقریبا بیش از اندازه بلندی است و از آنجایی که اغلب آن را در قطار تمرین می کنم بیش از 600 حرکت دارد و حرکات رقص آن را باید از بر باشم. طبیعی است که گاهی مقهور خیال پردازی شوم و قطار از ایستگاه مورد نظر رد شود. آنگاه با شتاب به یک هتل می روم. دنبال برنامه ی حرکت قطار ها می گردم و پلکان را بالا یا پایین می که به قطار بعدی برسم در حالی که تنها لازم است به اتاقم بروم و خودم را برای اجرای برنامه آماده کنم. خوشبختانه اغلب هتل ها مرا می شناسن. در طی پنج سال نظم و آهنگی ایجاد می شود که سرپیچی از آن مشکل از آن است که در لحظه اول به نظر می رسد از آن گذشته نمایندم که روحیات اخلاقیم را خوب می شناسد زحمت به جریان افتادن بدون دردسر کارها را به خود می دهد من هم به نوبه خود سعی می کنم به آنچه که او روح حساس هنرمند می نامد تمام و کمال احترام بگذارم به مجرد آن که وارد اتاقم میشم فضایی از آرامش و آسودگی دورو برم را پر می کند. گل در یک گلدان زیبا هنوز پالتو هم را بیرون نیاورده و کفش هایم را به گوشه پرتاب نکردم از کفش متنفرم که خدمتکار زیبای هتل قهوه و کنیاک برایم میآورد. وان وانه را پر می کند و در آن گرد سبز رنگی می ریزد که آب را خوشبو و آرامش بخش می کند. در وان همام شش یا دستکم سه روزنامه غیر جدی را می و با صدایی نسبتم بلند سرودهای مذهبی را که از زمان مدرسه به یادم منده است زمزمه می کنم. و مادرم که پروتستان های متعصبی هستند به پیروی از سیاست آشتی میان مذاهب که پس از جنگ شده بود مرا به یک مدرسه کاتولیک فرستادند. من نه آدمی مذهبی هستم و نه به کلیسایی وابستم. من از سرودهای مذهبی تنها برای تأثیر روانیشان استفاده می کنم. برای فراموش کردن دو درد که طبیعت بر دوشم گذاشته مالی و سردرد از وقتی ماری پیش کاتولیکا رفته است در ماری کاتولیک است ولی من این تغییر را به جا این دو درد شدت بیشتری پیدا کردن و سرودها و مناجات دست جمعی کلیسا هم که تا به حال کمک حال من برای مبارزه با این دردها بوده اند دیگر تأثیری ندارد. برای من یک درمان موقتی وجود دارد. الکل. و یک درمان قطعی و همیشگی هم می‌تواند وجود داشته باشد. ماری ماری مرا ترک کرده است. دلقکی که به میخارگی بیفتد، زودتر از یک شیروانی ساز مست سقوط می‌کند. وقتی از به روی صحنه میروم حرکاتی را که اهمیت آنها بسته به دقت اجرای آنهاست بی دقت اجرا می کنم و دوچار بزرگترین اشتباهی میشوم که یک دلغک ممکن است مرتکب شود به حرکات و خوشمزگی های خودم می خندم. این احساس به طرز وحشتناکی آدم را کوچک می کند، تا وقتی هوشیام ترسم از ورود به صحنه لحظه لحظه بیشتر می شود. اغلب مجبوراً مرا به روی صحنه هل بدهند و آنچه بعضی از منتقدین تنز آمیخته به تفکر و انتقاد مینایدند که در پس آن آدمی صدای قلب خودش را میشنود برای من جز سرمایه تردید آمیزی نبود که مرا تبدیل به عروسک خشب بازی میکرد راستی چه وحشتناک بود اگر نخوااب پاره می و من به خودم واگذار می شودم. احتمالا آدم های تارک دنیایی وجود دارند که تعمق می و نگرشی ژرف دارند ماری همیشه تعداد زیادی کتاب های ارفانی با خود داشت و به یاد دارم که کلمات خالی و هیچ خیلی در آنها تکرار شده بود از سفت قبل همیشه مست بودم و با اعتمادی دروغین روی صحنه می‌رفتم. نتایج آن خیلی زود آشکار شد. حتی زودتر از آن که یک شاگرد سهلنگار تا کارنامهش را به دستش بدهند، می‌تواند خود را با خیال دلخوش کند. شش ماه وقت کمی برای خیال پردازی نیست. پس از سه هفته دیگر گل در اتاقم نبود. اواسط ماه دوم دیگر اتاقم حمام نداشت و اوایل ماه سوم فاصله هتلم از ایستگاه به هفت مارک رسیده بود در حالی که پولی که به من می‌دادند یک سوم شده بود. به جای کنیاک عرق ارزان قیمت سرو می کردند. خبری از اجرای برنامه نبود انجمنهای عجیب و غریبی در سالن تاریک علیه من تشکیل جلسه میدادند. من روی صحنه هایی که نور رقت انگیزی داشت برنامه اجرا می میکردم. به جای حرکات حساب شده عداهایی در میآوردم که شرکت کنندگان در جشن های کارمندان راه، آهن پست، گمرک زنهای کاتولیک خانهدار و یا پرستاران پروتستان را به خنده بیندازد. برای افسران ارتش آلمان غربی که پایان دوران تحصیلشان را با و جشن گرفته بودند نمایش میدادم و آنها نمیدانستند که آیا مجازند به نمایش من به نام شورای دفاع بخندند یا نه و دیروز در شهر بخوم هنگامی که برای عده‌ای از جوانان چارلی چاپلین را تقلید می کردم زمین خوردم و دیگر نتوانستم از جایم بلند شوم آنها حتی هو نکردند و سوت نکشیدند فقط هم همه حاک از هم دردی در فضای سالن پیچید. هنگامی که پرده پس از مدت انتظار افتاد لنگان خود را از صحنه بیرون کشیدم، جلو پلاسم را جمع کردم و بدون اینکه گریم صورتم را پاک کنم با تاکسی به پانسیون رفتم. در آنجا جنجال وحشتناکی به پا شد چون صاحب خانم حاضر نبود پول تاکسی را به من قرض بدهد و تنها با دادن ریش تراش برقی ام نه به عنوان گروکه به جای پول به راننده تاکسی توانستم قرقره او را بخوابانم او هم لطف کرد و یک پاکت سیگار دست خورد و دو مارک پول نقد به من پس داد خودم را با لباس روی تخت خواب مرتب نشدم انداختم ته بطریم را سر کشیدم و پس از ماها خود را آزاد از مالی خودیا و سردرد دیدم روی تخت حالتی داشتم که این حالت را گاهی برای پایان زندگیم آرزو می کنم مست گویی در جوی آبی دراز کشیدم می توانستم پیراهنم را با مشروب معاوزه کنم ولی مذاکرات پیچیده که این معامله در برداشت مرا من منصرف کرد به خوابی خوش و عمیق فرو رفتم در رویا پرده سنگین صحنه مانند پارچه‌ای که روی مرده کشند، کلوفت و نرم رویم افتاد و مرا غرق در لذت کرد با وجود این در میان خواب و رؤیا ترس از بیدار شدن را حس می‌کردم با گریم صورت نشسته و زانوی راست باد کرده از خواب بیدار شدم سبحان ای رقتانگیز روی یک سینی پلاستیکی گذاشته بودند و پهلوی قوری قهوه تلگرافی از مدیر برنامه‌ام بلنس و ماینس جواب رد دادند شب تلفن می کنم بین تسونرر بعد یک تلفن از شخصی که قرار بود برایش بازی کنم از همین تلفن فهمیدم که او رئیس یک مؤسسه آموزشی مسیحی است خودش را با صدای پیر و سرد کاسترت معرفی کرد آقای شنیر ما باید اول مسئله دستمزد شما را حل کنیم گفتم خواهش می کنم مانعی نیست گفت عجب من سکوت کردم و وقتی او دوباره به حرف آمد لحن سردش و به سادیسمی ساده شده بود. ما صد مارک برای دلغکی قرار گذاشته بودیم که زمانی دویست مارک ارزش داشت. سپس سکوت کرد مسلمان برای اینکه به من فرصت عصبانی شدن بدهد، من هم ساکت ماندم و او همونطور که طبیعتش بود دوباره پستیاش را ظاهر کرد و گفت من رئیس یک اتحادیه ی عامل منفعه هستم و وجدانم اجازه نمی به دلغکی که 20 مارک برایش کافی حتی می گفت زیادش هم هست صد مارک بپردازم. من دلیلی ندیدم که سکوتم را بشکنم سیگاری آتش سدم از آن قهوه مزخرف کمی توی فنجان ریختم و به نفس تازه کردن او گوش دادم گفت هنوز گوش می دهید؟ گفتم هنوز گوش می دهم سکوت خوبی است. موقعی که به مدرسه می رفتم وقتی به مناسبتی از طرف رئیس مدرسه هزار می شدم همیشه سکوت می کردم حالا هم گذاشتم آقای کاسترت مسیحی در آن طرف سیم عرق بریزد کوچکتر از آن بود که برای من دلسوزی کند اما مکس من باعث شد او به حال خودش رحم کند و آقای بدیر لب گفت آیه شنیر. خودتان پیشنهادی بکنید گفتم آقای کاسترد خوب گوش کنید پیشنهاد من به این قرار است سوار تاکسی بشوید و به ایستگاه راه آهن بروید برای من یک بلیط درجه یک به مقصد بون بخرید یک بطری مشروب هم بخرید به هتل بیایید صورت حساب من را با آن آمان بپردازید و توی یک پاکت آنقدر پول بگذارید که کفاف رفتن با تاکسی تا ایستگاه راه آهن را بدهد گذشته از آن با وجدان مسیحیتان تعهد کنید که چمدان هایم را به خرج خودتان به بون بفرستید قبول است او حساب کرد، آرخ زد و گفت من میخواستم پنجاه مارک به شما بدهم گفتم پس باید با تراموا بروید آن وقت از پنجاه مارک هم کمتر میشود قبول است؟ او دوباره حساب کرد و گفت نمیتوانید چمدانها را با تاکسی خودتان ببرید. گفتم نه، من مجروحم و نمیتوانم این کار را بکنم وجدان مسیحیش گل کرد و با نرمی گفت: آقای شنیر، خیلی متاسفم که من جواب دادم. کافی است آقای کاسترت خوشحالم که می توانم به یک یه مسیحی 54 تا و 56 مارک نفع برسانم. یه تلفن را با دست فشار دادم و گوشی را پهلویان گذاشتم. او از آن آدم هایی بود که دوباره تلفن بکنند و بخواهد با وراجی خودش را تبرئه کند. بهتر این بود که او را با وجدانش تنها بگذارم. حالم داشت به هم میخورد آه، فراموش کردم یادآوری کنم که غیر از مالی و سردرد خاصیت اسرارآمیز دیگری هم دارم من میتوانم بو را از پشت تلفن تشخیص بدهم و کاسترت بوی شیرین بنفشه میداد. مجبور شدم بلند شدم و دندانهایم را مسواک بزنم با بقیه یه مشروبی که منده بود خیرغره کردم به زحمت گیریم صورتم را پاک کردم روی تخت خواب دراز کشیدم و به ماری و مسیحیان و کاتولیک ها فکر کردم و آینده را جلوی چشمم به حرکت در آوردم به جوی هایی فکر کردم که زمانی در آینده در آنها دراز خواهم کشید برای دلغکی که به 50 سالگی نزدیک می شود فقط دو امکان وجود دارد جوی آب یا قصر اعتقادی به رسیدن به یک قصر نداشتم و تا رسیدن به 50 سالگی هم بیش از 20 سال را باید یک جوری می گذارندم. این واقعیت که شهرهای کوبلنس و ماینس قراردادها را باطل کردهاند تسونرر اعلام خطر درجه یک خواهد نامید ولی من یک خاصیت دیگر خودم را هم فراموش کردم معرفی کنم بیتفاوتی این صفت است که میتواند در برابر خطر مقاومت کند بون همجوی آب دارد تازه چه کسی حکم کرده که باید تا پنجاه سالگی صبر کنم من به ماری فکر میکردم، به صدایش، به گونه هایش, به دست ها و موهایش، به حرکاتش و به تمام کارهایی که با هم کرده بودیم. همچنین به تتصاافمر فکر میکردم که میخواست با ماری عروسی کند. منو و نر یکدیگر را از بچگی میشناختیم تا جایی که وقتی به عنوان دو انسان بالغ دوباره همدیگر را دیدیم نمیدانستیم یکدیگر را تو خطاب کنیم یا شما، مرد آنها ما را دو چهار حالی می کرد که نمی چه بکنیم؟ بعدها هم با وجود آنکه یک یکدیگر را زیاد میدیدیم هرگز نتوانستیم از این حال خلاص شویم. نمی توانستم درک کنم که چرا ماری همه را گذاشته بود و این مرد را انتخاب کرده بود. ولی شاید من هیچ وقت ماری را درک نکرده بودم. به خصوص از اینکه کاسترت رشته افکارم را پاره کرد عصبانی شدم. او مثل یک سگ پنجهایش را به در آقای شنییر چرا جواب نمی به دکتر احتیاج ندارید؟ جواب دادم کار Kar به کارم نداشته باشید پاکت را زیر در رد کنید و پی کارتان بروید پسسترت پاکت را به داخل انداخت بلند شدم آن را برداشتم و باز کردم داخل آن یک بلیت درجه دو از بخون به بن بود و پول تاکسی دقیقا محاسبه شده بود شش مارک و پاه فنینگ من امیدوار بودم که او پول تاکسی را سرراست کند و ده مارک توی پاکت بگذارد. با خودم حساب کرده بودم که اگر بلیت درجه یک را با درجه دو با ضرر هم عوض کنم پنج مارک به نفع می شود. غاسترت از پشت در فریاد زد. چیزی کم ندارید؟ گفتم. نه nah, بزنید به چاک جغد مسیحی. گفت. اختیار دارید. و من زدم گم شوید. او لحظه ای پشت در ساکتی استاد و بعد صدای پایش رو شنیدم که از پله ها پایین می رفت. فرزندان این دنیای خاکی نه تنها باهوشتر از فرزندان کلیسا، بلکه تر و سخاوتمندتر هم هستند. به جای تاکسی با تراموا به ایستگاه راه آهن رفتم تا بتوانم اختلاف قیمت آن را برای خرید مشروب و سیگار صرف جویی کنم. صاحبخانه پول تلگرافی را که شبی به مونیکا زیلوز در بن مخابره کرده بودم با من حساب کرد. خواست پول آن را نداده بود و به این ترتیب موجودی من کفاف پرداخت کرایه تاکسی تا ایستگاه راه آهن را نمیداد. تلگراف را قبل از اینکه خبر لغو قرارداد کوپلنس بهرسد مخابره کرده بودم بهتر بود خودم تلگرافی به کوپلنتس میفرستادم که به علت درد شدید زانو آمدنم غیرممکن است و اینکه آنها پیش دستی کرده و خودشان قرارداد را لغو کرده بودند کمی ناراحتم میکرد ولی حداقل تلگراف به مونیکا مخابره شده بود خواهش میکنم آپارتمان را برای فردا آماده کنید با احترام هانس